از وجود مبارک امام هشتم علیه یک نمیشه و سلامون راقه علیه ما بسیده که خوهر ایمام خاکنه محسومه در قوم محسومه هر کس این بامو را زیارت کند، بهشت برانده و از وجود مبارک ایمام نام محمد سرین کرام الله علیه بسیده چه من قاطنه محسومه در قومت هر و هرکس کنه حضرت راضی ها کنه بهشت در آنید ارمان که باعث ورودی در بهشت یک بعضی از عملهال خیر با میشود که انسان به بهشت راست یدا میکن بعضی از اعمال خیر ثبب می که بهشت در اختیار او نهاو در اختیار بهشت گای گنا میفرمانند اگر کنون خواه شیخ را دادی وارد بهشت می شدید قابلی بید مرمویم اگر کنون خواه را دادی بهشت ماری در صورت دوم که بهشت ماری کسی انسان هفته شماعت انزام که این به فبر اینکه وجود مجود مبارک امام هشتم به امام نهوم سلامون داخل احمده هر از سلام الله همیه ها را میعارف کنند به هیش مالیون بهش است چه او احمد نویف اگر کسی کنیم دلائی با درمان اصفت بطهارت داشت می خوشد که رایهی دلائیت و تأمین دلائیت در حسنی روحه دلائیت و خود به اولیان ایلا اگر کسی دلت به اولیان قراشت و رضایی الله شد بهیشت مشتابیت در برخی از رغایات ما آمده که بهشت مشتاب خنمان هست اشتیاق بهشت بس خنمان نیشت از اناظر سلمان خنمان رو بهشت که بهشت محسوب عقیده خبیل و احلاق سبیل و عمل صادیه و عقیده و, و احلاق و اعمال جزده شعون ادراشی و, و, و, و اگر بهش در اثرات عبیده و خرق و و اگر عبیده و شعون و عملی روح آزمان انسانوالا در عقیده و احلاف و احما بهش را سایی بهش منلوکه ایسانی به ذریع الله است. در جریان جوزت هم معاد الله شنید است خدا بر این وجود مبارک امام هشتو به امام مخون سلام الله علیه و آخره رسول واسطه نور ما الله علیه و آله و صحابه